یک روز سرد ماه آوریل رئیس مطابق معمول ما را در ساعت سه توی خیابان صد و آمستردام سوار کرد و اتوبوس پر را توی خیابان صد و به جانب شرق چرخاند و مثل همیشه خوشخوشک راه خیابان پنجم را در پیش گرفت. مویش را خیز شانه کرده بود و به جای نیمتنه چرمی پالتو پوشیده بود و من معمولانه حد زدم که مری هاتسان قرار است به ما بپیوندد. و وقتی به سرعت از جلوی در ورودی همیشگی ما به پارک گذشتیم، دیگر مطمئن شدم. رئیس اتوبوس را در همان گوشه حوالی خانه های شماره 51 تا 59 که مناسب موقعیت بود، نگه داشت. بعد برای اینکه وقت را برای ما کمانچی‌ها بی‌سرا صدا بکشد، پاهایش را از هم جدا گذاشت و رو به ما روی سندلیش نشست و فصل تازه از مرد خندان را تعریف کرد. تک تک جزئیات این فصل به یادم مانده که باید خلاصه را بیاورم. سیلی از حادثه، بهترین دوست مرد خندان یعنی گرگ جنگلی، سیاه بال را هم جسمی و هم روحی به دام دوفارش و دخترش انداخت. آنها آگاه از وفاداری بیچون و چرای مرد خندان به او پیشنهاد کردند که سیاه بال را در ازای شخص او آزاد کنند. مرد خندان در نهایت وفاداری شرایط را پذیرفت. بعضی از جنبه های نبوغ مردخندان گاهی دستخوش ندانم های جزئی و مرموز او شد. قرار بر این شد که مردخندان دوفارش و دخترش را نیمه شب در جای مشخصی از بیشه امبوه اطراف پاریس ملاقات کند. و در آنجا زیر نور ماه سیاه بال آزاد شود. البته آنها خیال نداشتند سیاه بال را که از او می و بدشان هم میآمد آزاد کنند. در شب معامله یک گرگ جنگلی بدلی را به جای سیاه بال بستند و ابتدا پای عقب او را رنگ سفید زدند تا شبیه سیاه بال شد. اما دو و دخترش حساب دو چیز را نکرده بودند. یکی حساسیت مرد خندان بود و دیگری تسلط او به زبان گرگ های جنگلی. مرد خندان همین که به دختر دو اجازه داد او را با سیم خاردار به درختی ببندد احساس علاقه کرد که صدای زیبا و خوش آهنگش را دهد و در چند کلمه با دوست فرضی و قدیمی خود خداحافظی کند گرگ جنگلی بدلی چند حیات محتاق دورتر مسحور تسلطان قریبه به زبان خودش شد و معدبان مدتی به اندرز شخصی و حرفیی که مرد خندان به صدای بلند در آخرین دقیقه به زبان می‌آورد گوش داد اما دست آخر حسده سر رفت و این پنجان پنجه شد آن وقت ناگهان و با تندی توی حرف مرد خندان دوید و به اطلاع او رساند که اولا اسمش تاریک بال یا سیاهبال یا پاخاکستری و اینجور اسمها نیست و آرماند است و ثانیان توی عمرش به چین نرفته و اصلا خیال رفتن به آن طرفها را ندارد مرد خندان که راستی راستی از کوره در رفته بود نقابش را با زبان کنار زد و با صورت برهن زیر محتاب رو در روی دو و دخترش ایستاد مادمازل دو فارش جا, جا از حال رفت. بخت پدرش بلندتر بود. چون تصادفاً در آن لحظه یکی از آن سرفه های همیشگی به سراغش آمد و بنابراین پرده برداری مرگبار را ندید. وقتی صرفهش تمام شد و دخترش را دید که تاق باز روی زمین مهتابی افتاده، شستش خبردار شد که وزه از چه قرار است. آن وقت دستش را سپر چشمایش کرد. و شانه فشنگ لباله به اسلاحی خودکارش را رو به صدای نفسهای سنگین و سفیر مانند مرد خندان شلیک کرد فصل داستان همینجا تمام شد رئیس ساعت اینگرسول سکه خود را از جیب ساعتش بیرون آورد نگاهی به آن انداخت بعد روی سندلیش تاب خورد و موتور را رو روشن کرد من نگاهی به ساعت خودم انداختم تقریبا چهار و نیم بود اتوبوس که راه افتاد از رئیس پرسیدم که مگر منتظر مریهاتسان نمیشود. شود. جواب مرا نداد. و پیش از آنکه سؤالم را تکرار کنم، سرش را به عقب خم کرد و خطاب به همه ما گفت خوبه یه خرده توی این اتوبوس لجندرمال آروم باشین. این دستور گذشته از هر لحنی که داشت اصولا بیمعنی بود. توی اتوبوس نفس از کسی بیرون نمیآمد تقریباً تقریبا همه ما، به مخص ای فکر میکردیم که مرد خندان تویش گیر کرده بود دیگر خیلی وقت بود که رو را نمیخوردیم. آخر اطمینان زیادی به او پیدا کرده بودیم اما در لحظه هایی که بیش از همیشه برایش مخاطر آمیز بود قرار را آرام نداشتیم آن روز بعد از ظهر در دور سوم یا چهارم توپ بازی که بودیم ناگهان از دکه سوم چشم به میریات افتاد در فاصله هشتاد نود متری طرف چپ من روی یک نیمکت وسط دو پرستار بچه که هر کدام یک کالسکهی بچه داشتن نشسته بود و راه پس و پیش نداشت. کت پوست فک خودش را پوشیده بود، سیگار دود می کرد و ظاهراً توی نخ بازی ما بود. از کشف خودم دچار حیجان شدم و خبر را به صدای بلند به رئیس پشت سر توپنداز رساندم. او عجولانه بیان که بدود به طرف من آمد و پرسید. کجا؟ دوباره اشاره کردم. برای لحظه‌ای به طرف راس چشک دوخت بعد گفت که یک دقیقه دیگر برمیگردم و از میدان بیرون رفت آهسته آهسته از میدان بیرون رفت و آرام آرام دکمه های پالتوی را باز کرد و دست را توی جیب های پشت شلوارش فرو برد من همانجا در دکه اول گرفتم نشستم و تماشا کردم وقتی رئیس به مری هاتسون رسید دکمه های پالتوی بسته بود و دست هایش آویخته بود 5 دقیقه بالای سر میری هاتسون ایستاد ظاهرا با او حرف میزد. بعد میری از جا بلند شد و هر دو قدم زنان به طرف میدان بازی بیسبال آمدند. راه که می‌آمدند نه حرف زدند و نه به هم نگاه کردند. وقتی به زمین بازی رسیدن رئیس سر جایش پشت سر توپاندازی ایستاد. من به صدای بلند به رئیس گفتم: مری بازی نمیکنه و او به من گفت که کشکم را بسابم و من کشکم را میساویدم و توی نخ مری بودم. او دست را توی جیب کت پوست فک خودش کرده بود و آهسته کنار میدان قدم میزد. دست آخر روی نیمکت زخیره ها کنار دکه سوم نشست. سیگار دیگری روشن کرد و پاهایش را رو روی هم انداخت. وقتی مبارزان بالای دو رفتند به طرف نیمکت او رفتم و پرسیدم که میخواهد گوشه چبازی کند؟ با اشاره سر گفت که نه. پرسیدم که سرما خورده است و او باز با اشاره سر گفت که نه. به او گفتم که من کسی را ندارم که در گوش چپ بازی کند گفتم که یک نفر را دارم که هم وسط بازی می کند و هم گوش چپ در برابر این خبر اصلا پاسخی نداد دستکش بازی کنه اول را به هوا پرتاب کردم و سعی کردم دستکش را با کل هم بگیرم اما توی یک گل گلالود افتاد دستکش را با شلوارم پاک کردم و از میری پرسیدم که دلش می‌خواهد یک روز برای نهار به خانه ما بیاید به او گفتم که رئیس مرتب می‌آید گفت ولم کن خواهش میکنم ولم کن به او خیره شدم بعد به طرف نیمکت مبارزان راه افتادم یک نارنگی از جیبم درآوردم و به هوا پرتاب کردم به وسط محوطه خطای دکه سوم که رسیدم برگشتم و عقب عقب به راهم ادامه دادم نارنگی را میانداختم و میگرفتم و مریهادسون را نگاه میکردم خبر نداشتم که میان رئیس و مریهادسون چه اتفاقی افتاده هنوز هم خبر ندارم اما روی هم رفته بوهایی بردم با وجود این دیگر کاملا مطمئن بودم که مری برای همیشه خودش را از صفحه بازی کمانچیها ها کنار کشیده همین اطمینان بود که مجموعه واقعیت هایی که می دیدم به کنار عقب عقب راه رفتن را از حد معمول خطرناکتر تر می کرد و این بود که به یک کالسکه‌ی بچه برخورد کردم پس از یک دور دیگر بازی هوا برای دسته زیر دو دیگر تاریک شده بود پایان بازی اعلام شد و ما شروع کردیم لوازم خود ما را جمع کنیم آخرین باری که مری هادسون را خوب دیدم وقتی بود که کنار دکه داشت گریه می کرد. رئیس آستین کت پوست که او را گرفته بود اما او خودش را کنار کشید دوان دوان از محبته میدان بیرون رفت و پا به قسمت سیمانی گذاشت و همچنان می دوید تا اینکه دیگر او را ندیدم رئیس دنبالش نرفت ایستاده بود و او را نگاه می کرد که از نظر دور می بعد برگشت و به طرف دکی اصلی رفت و دو چوگان ما را برداشت ما همیشه چوگانها را برای او میگذاشتیم تا بیاورد پیش او رفتم و پرسیدم که با میریهادسون دعوا کرده و او گفت که پیراهانم را توی شلوارم بکنم ما كمانچا مثل همیشه پنج ا شست متر مانده را تا جایی که اتوبوس پارک شده بود دویدیم داد و کردیم تن زدیم و سعی کردیم از پشت سر همدیگر را بگیریم اما همه خبر داشتیم که وقت داستان مرد خندان است. همانطور که توی خیابان پنجم مسابقه دو گذاشته بودیم کسی ژاکت اضافی خودش یا ژاکتی را که از تن درآورده بود انداخت. آن وقت من رویش لیز خوردم و نقشه زمین شدم. بعد به سرعت خودم را به اتوبوس رساندم اما جاهای خوب را گرفته بودند و مجبور شدم و وسط‌های اتوبوس جا خوش کنم. من که از جایم دمق بودم با این صقلمه‌ای به پهلوی پسری که طرف راستم نشسته بود نثار کردم. بعد رویم را برگرداندم و رئیس را دیدم که از آن طرف خیابان میآید. بیرون هنوز هوا تاریک نشده بود. اما تیرگی ساعت پنجروب اتوبوس را فرا گرفته بود. رئیس یقه پالتویش را بالا زده بود و از آن طرف خیابان میآمد. آمد. ها زیر بغلش بود و شش دانگ حواسش جمع خیابان بود. موی سیاهش که پیشتر خیز شانه شده بود، حالا خشک شده بود و دستخوش باد، یادم می آید که دلم میخواست رئیس دستکش دستش باشد. وقتی رئیس بالا آمد، اتوبوس مطابق معمول آرام بود. یعنی درست حال سکوت جایگاه کم‌دور تماشاچیان تئاتر را داشت. گفتگوها به صورت پچ‌پچه‌های عجولانه درآمد یا به کلی قطع شد. با این همه، اولین حرفی که رئیس بر آورد این بود که: خیلی خوب، دیگه سر و صدا نباشه وگرنه از داستان خبری نیست. در یک چشبه زدن سکوت بدون شرط اتوبوس را انباشت و رئیس دیگر راهی نداشت جز اینکه بنشیند و آمادهی داستانگویی شود سر جایش که نشست دستمالی بیرون آورد و با آداب تمام هر بار با یک سوراخ بینی فین کرد ما صبورانه و حتی با نوعی علاقه قلبی تماشا می‌کردیم کارش که با دستمال تمام شد خیلی مرتب آن را چهار تا کرد و در جیبش جا سپس فصل تازه مرد خندان را تعریف کرد که از اول تا آخر بیش از پنج دقیقه طول نکشید. چهار تا از فشنگ های به مرد خندان خورد که دوتایش در قلب اوجا گرفت. وقتی دوفارش که هنوز جلوی چشمهایش را گرفته بود تا چهره مرد خندان را نبیند، نالی عجیب احتضار را از جانب هدف خود شنید، انگار قند توی دلش آب کردند. همچنان که قلب سیاهش به شدت میتپید با عجل خودش را بالای سر دختر بیهوشش رساند و حال او را جا آورد. هر دو گذشته از اینکه از خوشحالی و شهامت نامردانه سر از شناختند، دل و جرأت پیدا کردن به مرد خندان نگاه کنند. سرش مثل مردهها خم شده بود و چانش روی سینه خونآلودش قرار داشت. پدر و دختر آهسته و هریسانه نزدیک تر رفتند تا نگاهی به دقل کاری خودشان بیاندازند. قافل از اینکه چه آشی برایشان پخته شده بود مرد خندان که هنوز نمرده بود داشت پنهانی ماهیچه های شکمش را منقبض می کرد و دخترش همین که نزدیک شدند ناگهان مرد خندان سرش را بالا آورد قهقهی وحشتناکی سرداد و خیلی تمیز و حتی با حالی هر چهار فشنگ را بالا آورد اصیر این شاهکار بر دو و دخترش به اندازه کاری بود که قلب هر دو جا به جا ترکید و نعش آنها در پای مرد خندان دراز به دراز افتاد. به هر حال اگر قرار بود این فصل از داستان کوتاه باشد در همینجا تمام می و کمانچی ها می که مرگ ناگهانی دو و دخترش با منطق جور در می آید. اما داستان در اینجا تمام نشد. مرد خندان روزهای پیاپی همچنان با سیم خاردار به درخت بسته شده بود و دو فارج و دخترش در پایش متلاشی می شدند. مرد خندان نیست که مرتب خونریزی داشت و از زخیره خون اقاب دور بود تا این حد به مرگ نزدیک نشده بود تا اینکه روزی با صدای خشن اما رسا از جانوران جنگل درخواست کمک کرد آنها را احزار کرد تا بروند و انبا کتوله دوست داشتنی را بیاورند و آنها هم اطاعت کردند اما سفر رفت و برگشت میان پاریس و چین زیاد طول کشید و وقتی با کیف طبی و ذخیره تازه خون ها به ذهن گذاشت مرد خندان به حال اقما افتاده بود اولین کار ترحم‌آمیز آمیز با این بود که نقاب اربابش را که باد روی تن کرم افتاده مادمازل دو فارژان داخته بود برگرداند نقاب را محترمانه سر جایش روی سر و صورت زشت گذاشت و بعد شروع به پانسمان زخما کرد دست آخر وقتی چشمهای ریز مرد خندان باز شد اون با مشتاقان شیشه خون اقاب را تا نقاب بالا آورد اما مرد خندان ننوشید به جای آن با صدایی ضعیف نام سیاه بال را به زبان آورد اون با سرش را که تا حدودی بی بود خم کرد و به اطلاع اربابش رسان که دوفارش و دخترش سیاه بال را کشتند مرد خندان نالی عجیب و جگر خراشی از اندوه واپسین سرداد و با درماندگی دست راست کرد شیشه خون اقاب را گرفت و توی مشتش خورد کرد خون کمی که در تنش مانده بود از ماچش قدر قطره چکید به اون با دستور داد که رویش را رو برگرداند و اون با حق حق کنان اطاعت کرد آخرین کار مرد خندان پیش از اینکه صورتش را رو روی زمین خون‌آلود بگذارد این بود که نقابش را کنار بزند داستان البته در اینجا به پایان رسید هیچگاه دنبالش گرفته نشد رئیس اتوبوس را رو روشن کرد روبروی من در طرف دیگر اتوبوس بیلیوالش که از همه کومونچیا کوچکتر بود زیر گریه زد کسی به او نگفت که خفقان بگیرد و اما من یادم یاد میآید که زانوهایم می لرزید. چند دقیقه بعد وقتی از اتوبوس رئیس پا بیرون گذاشتم اولین چیزی که تصادفند دیدم دستمال کاغذی قرمزی بود که به پایه تیر چراغ برقی گیر کرده بود و باد میخورد. شبیه نقاب کسی بود که از گلبرگ خشخاش درست کرده باشند. به خانه که رسیدم دندانهایم خود به خود به هم میخورد و به من گفتند که یک راست. توی تخت خواب ببرم